الحمد لله رب العالمين صل الله علی سید و رسول الله و آله طیبین و عداد بحث همون خود زن که مرحوم شیخ قدس الله من برادر مصطوی را اینقانی بعد از بحث قد یعنی مسائلی که متعلق به بحث ا شیخ متعرض تجریی شدند که از کردم بعد از شیخ در کتاب ایده از کاوکانش اول به ساطورم کتاب کفایه بحث تجریی رو قبل از قطع قد آورده مصواهم مع توسار قبل رو هرمان بعدش در حال از خواهر بحث, بحث تجریف شدن به مناسبتی بحث که این صورتی که در اینجا مطرح شدن بین عنوان طبیعت حاله شده این عنوانه که انسان در جایی که اماره هست یا قرد هست حالا مظمومه شد در بحث اماره قرد عوضه این مصدار باده داشته در امارات و حتی اصول هم میعثله بر توضیح شرک وقتی که قصد پیدا میکنه اگر این حرف مطابق با واقع با با باشه و انجام بده که در واجبات باشه اصطلاحاً اسمش رو اطاعت بذاشن و اگر مطابق با واقع نباشه با با و انجام بده اسمش رو اصطلاحا امقیاب بذاشن یعنی در یک اصطلاحی امقیاب در محاوله اطاعت اطاعت در که اون اماره مطابق با واقع با با باشه خبر آمده مثلا نماز شب اینطوری مستحبه و شخص انجام بده اطاعت میگن اگر این خبر اشتباه باشه انقیاد میگن این اصطلاح هم رو در مقابل اطاعت قرار حالتی گاهی اومد اون در واضح دارتونی گره ایشتی توضیح هم میگن شامل هر دو میشه هم اطاعت هم انقیاد است. در بحث تجربیه هم, هم اینطور اگر محصیتی باشه یا با که باشه, باشه میخالفت اگر مسابق با واقع باشه اصطلاحاً معصیت میگن اگر مخالف با واقع نباشه اصطلاحاً تجری میگن یعنی کاری تجربی به هر دو گفته میشه لذا این چهار عنوان پیدا شده اطاعت و انقیاد دستات عمل کردن و اطاعت درجات موافرت واقع یعنی درجات عدم موافرت و تجری و معصیت در صورت عمل نکردن و ترک واجبه یا انجام حرام کردن محصیت در جایی که بشه و تجربی هم در جایی که متابق بشه این اصطلاح است که به مناسبت بحث قد و امارات در اینجا آمده شده یعنی در محصایی اینجا متعرض شده لیکن به این صورت بحث به این صورتی که الان هست یادم نمیاد که مثلا در روایات به این صورت تعرض شده باشه این تجریه رو از این زاویه بحث و شبیه شو هم منبله داری. منبله داری. داری. این غیات رو شبیهش رو هم رواست منبله رو داریم منبله قبوشه و من سواق علا عمله فعمله رو کان لهو دالک سواق و امکان رسوا لن یکون بود این داریم کان لهو دالک سواق این طوری هم داریم یه زیر دیگه هم داره داریم لن یکونه هم کما برگر دو تا زیر داریم این رواست منبله رو دیگه شبایی شده شده من یکیه یکی از این بسیار مهم در حاضیت من بلند همینه که زیدش دو تاست و آثار این تعداد زید خیلی زیاده در یک زیلش هست و رو تمام در یک زیدش هست و از دو تا زید داره زید یکی نیست شرم این حدیث و این زید این هایی که به وقت خاص خود که که بیشتا تو وقت تسامو متعرضش بله در ادهی از روایات ما و روایات اقلی سنن عنوان اداه همه به حسنه کتبه و اداه همه به سیئله هم این داری عنوان همه به حسنه یعنی اراضه حسنه پیه بحضی هاشن یعنی تصریح نشده اما عنوان اراضه و از محله اراضه داری وقت اونی که در صابقه داره بعد ها اخلی سندن در اینجا آمدن یک جمعی کردن که مثلا روایات رو که رسول الله آمدن بین اونها همه و ازمه قرار گذاشتن که این چون در کساب ما بعد ها آمده و رو عرض بکنن چون در روایات ما داری همه به بسته یه علم تختب در بود لحمه تختب علي. و احل سنت این اصطلاح همه رو در اینجا علمای های ما تقریبا مرادف تجربیل در کتاب اهل سنت این اصطلاح در این روایات هم روشن بشه همه رو در مقابل حضرمه گرسند یعنی بین هم و عزیمت فرق بودشند هم در است که خطور به ذهن بکنه، اصلا بیرانستان خطور به و ذهن شوید شبه بکنند مبلسا این خطور به دل راه همگ رو داشتن هم ملعب دو هم ملعب دو همه به سلیه اما عرض رو اونجا دادن که اضافه بر خطور تصور و تصور و تصورشون تصور تمام بشه و اصلا اقدام بکنه لیکن به گناه نرسه اقدام بکنه پس توی این مثلا برای شر میزنه تا سر ماین تو در اونجایه فشراق میتونوشم پولم دادشراب هم خرید آمد که خونش بخوره براش مان... نخواست صحه کرد و ریش شراب رو. این رو گفتن ضرمه ا رو در جایی گذاشتن که به اصطلاح اضافی بر این که داشته و بعد از مقدمات هم تلباس شدا بکنه و بکن عملا اون کار انجام نشد ل رو به خاطر نظر خودت کوق بکنی. ای لفه خودش میکنه ای لفه توبه میکنه, میکنه. میاد تو خونه بکشی میده, چیزی. شبه شبه شبه میده. به خاطر یک امر غیر اختیاری نمیتونه شراب بخوره این رو شده هر. چون این مطلب در عبارات از ما آمده من بخواستم ریشه های این مطلب رو قبل از عبارات از ما مثلا مرموم استاد متعرض این روایات شدن اشاره فرمودن به این روایات چون یک بحث تجری که عرض می کنن بحثش ببینید برای حرمت تجریح در این کتاب مرحوم استاد لغزیل تنبیه احسانی تنبیه نمی خواهد جز تنبیه های باشی جز در صفحه 29 همین جلد دوی مصباح در این چاپ جدید به شما تسرسته 47 ظاهر این جلد با جلد قبلی فردار به لازش صفحات بعد ایشون می فرماید که روبه ما یستده لحرمت تجربی به روایات قد دال لعلالعقاب به قصد المعصیه و هنات روایات اخر دال لعلالعقاب به قصد المعصیه و همین ال جمعش اینطوری طوری کردن این در کتاب رسالتون شیف متعرض شده آمیه برد شیف ها بودن دیگه دیگران این جمع از هزار و تا شده تازگی نداره نه که اینجا در کتاب شد و قدیوش من اتارتن بین حاسین و طایفت به حمل طایفت عل علالقص معل اشتغال داره. به بعض المقدمات و طایفت و عل علالقص ایشون تعبیر کردن به قصد مجرد قصد محل اشتباه این اصطلاح ایست که ایشون بکار این در کتاب اهل سنن در اون هم میشونم آمده عرض و هم روشن شد اصطلاح رو اونجایی که قصد مجرده بذاشن هم هم تو رواید ما همینه این نلعب هم از این محسیه این اصطلاح مخواه اصطلاح روشن بشه پس که عرضم یک, یک همینه از اونجایی که مقدمات و انجام داده لکه این به نتیجه نرسیده و هم در اونجایی که لکه این از کجا آمده اصل این مطلب ریشه این مطلب چون ایشون هم در اینجا دارن بعد متعرضه هون شدن و شاهد بر این معنا هم همین نبوییست حالا این من از اینجا یواشهاش میخواستم ریشه های تاریخی بحث رو بگم یواشهاش باید بحثم میشین پس بنابراین، در مبحث تجربه این عنوانی که ما الان داریم من الان تو ذهنم نید الان تو ذهنم تا این بگید تو ذهنم راجعه کردن متعرض اصولی قدیل متعرض این بحث شده باشن بعد این ریشه هایی داره که بعد عرض می کنم ریشه های روایی هم روایات همه برمحصیت و حضم برمحصیت هم و حضم بیاییم همه برمحصیت مشکل نداره لیکن عزم و برمعصیت حرامه عزم و برمعصیت حرام وقت این تجریه مانحنفی از کدو نیکی از عزمه تجریه مانحنفی اون بیانه قاید شد که این شراب این به قصد شراب هم خور در واقع شراب نبود روشن شد پس اصل وقتل رو در نوایات هر قصد مرموم استاد و مرموم شیف این تعبیل رو من در این کلمات اصولی خود رو نهید این تعبیل در در نحن سنه بود من چون خیلی اعتقاد دارم سعی از این یک کاری بشه که تمام نظرات جمع بشه و معلوم بشه این سرش این بود یکی رو هم گرفته یکی رو عرض می گرمسن. از خب اینجا انجام دارم دیگه عرض می کرد یعنی اینجا قطور نکرده ذهنش شهر و هم اینجوری بوشتن هم اگر به ذهنش خطور بکنه خود بگرد بکنه در مقدره موشه دفت از قیل از خطور آباده انجام میده اینجا خطور نکرده و ذهنش چه شراب بخوره این مایه ایرم که گفتن شرابه مشغول خوردن شو و از ترقیه تقسیم چی میشه؟ میشه مسئله عرض هم انجام میده. همون دیگه عرض دیگه نه آبا میخوره نه میخورم میگم یعنی خیر همه تنها نبوده. آیا این رو دادم آیا خوب میشه؟ نه نه رو این رو هم این رو این رو این رو سالو قبل. داره اما اگر من اختیاری بود نه چیزی برای شما شده باشی اون بین امر اختیاری اختیاری این رو من نه قلبه نه این اصطلاح تجربی هر اصطلاح اصولی ما الان این طور شده. اما این اصطلاح میشه نداره اصطلاح اصولی ما تجربی در دوال مرزیه اگر کار را انجام داد مخالفت شارع کرد مطابق واقع بود میان مرزید مطابق نبود تجاری این استلاحش بوده مثل اطاعت و این اگر موافقت شارع کرد موافقت با واقع بود اطاعت موافقت نبود ای شارع. این قیاد استلاح. این استلاحش این اصطلاح نکسیش اینه که اگر زفر ما از ادله شرعیه در سوال اینه تو نهسته به این عنوان نیست عنوان همه به هم. سیعه اینا آمدن مثل محلوم شیخ این عنوان ما نحنفی را از اون روایات دروردن امنا لعبدالله همه بسته یه قلمی عملها کتبت لغو حسنه اگر این مطلب رو بشن شد من مون از بسیل میگهیم شون محلوم اصداد جمع بکنیم این ما قبل از اینکه این حرف رو بزنیم بی توضیح رو هم ببنیم. در خود مسادر اهل سنت جمع که تصالبا کلام اهل سنت در جمع این مطلب در د اول اینا این فرمودن که کنند به فخر که شهر بخار مراجعه حاضر می کنه خود استاد هم در اینجا همین حدیث آورده این حدیثی نه حضرت امام مسلمان نام سید ما تلخاصل و محصول که نا سریع یا الله در قاتل تمام بال محصول. حالا این قاتل در نار درست محصول شده فقال علیسان در نبو عراض قبل صاحبین این عراضه یعنی این متلوسته به مقدمات شد اما موافر نشد مخواد مسلمان دیگه بکشه موافر نشد و ولذا در اینجا دو معنا احتماله یک اینجا همه تنها نبوده مقدمات هم انجام داده دو اینی که حرام انجام نشد غیر اختیاری بود از اختیارش خارج بود در این دواتون مبارکه دو لخته آمده یکی اشتغال اون قدماں یکی این که عدم تمکن از و به خاطر امر غیراستوری این توجیهی شده خب از یواش‌هاش ما دیگه وارد بحث تکرار پس معلوم شد که ایشان و وقت در میان اهل سنت از اهل سنت هم به همین قول معتقد شده از اون معتقد که اگر کسی ازن کار حرامی رو که در مقدمات مشغول شد اون کار حرامه ولی انجام بده بسید هم با این مبانی تجربه حرام بشه این اصل ورود بحث در این مسئله که در ساخه باییاتی که وارد شده همینی دواتی مرموشه هم رو ما یواشه از اینجا وارد مسئله میشیم و توضیح بیشترش این شاهد در خلال بحث باشیم میشه تریعا رد میشیم پس بنابراین بست تجربی به این عنوان الان میگم پیدا نشده اما یک عنوانی هست که شامل منحنفی هم میشه و امده ای اون روایتی که شامل منحنفی میشه تا ایفوی هم درست دارن. امده شد این روایت ازالتقل مسلمان به سیفه ما هست لعنه ها عراض قتل صاحبی او لعنه ها عراض قتل او اول ها عراض قتله نو سمش مختلف روایتی معلوم میشه اراده قصد هم خودش حرامه خب در تجربه اراده قصد هست اراده شروع خبر هست اراده که از یک محمد میدید دران بکرد با کشی اینه کش بعد منظور که یکی از اون مثلا فرس کفار محضو هدن در شخص بسیار خبیدیدیست که اصلا باید قطعا کشته بیشد خب اراده که بود از وقتی دیگه این درمان از قصدید اما اراده وجود داشت این اصل مقلب یعنی از اینجا روشن شد که این مسئله از دقایه مختلفی بررسی میشه راستم هست یک زاویه بعد فرمشه که مهمونه این فضل زاویه شهیست این زاویه فرشیش اینه اگر انسان اراده کرد عمل حرام رو انجام بده آیا اون عمل حرامه اون کار حرام میاده مثلا اراده کرد شبخم بکنه این ماریه هم خود بعد آب درمه سؤال همین که ارادهی شده که حرکت این کار حرامه ولی شروع نمون بی نفس جایزه لكن چون ارادهی شده که حرکت این کار حرامه حالا اون نکته شو بعد دراز بحث میخوام سریع از این بحث رد بشم این رو منظور اونایی دست کلی قرارداد راست ما این بحثه کردیم امده تمسک ی هر کی درمیون شده در که حرام باشه یا نباشه یکی مثلا دعوای اجماع در مساله یکی هم مساله روایات این دو تا دعوای مهم در که از کلی مغموم استاد این مطلب رو با عنوان تنبیه ثانی و در صفحه 29 روبما یستدلل حرمت تجری بله به روایات داله بعد اشون فهمن حالا فهمند حالا ولیکن تحدیف اولا حالا من اجمالا چون بر یک مطمئی قرار نهیم کلامه استاد در نیست عدم صحت الاستدلال به روایات داله یکی انها قاسر از بین حیت و صنند او دلله ویشون ف ها به تمام ها و ری نوع مای دوله مخصوول ضعیف و صنند ک به رییل ممسکوور این آیم به حالا این کی چاپ کرده در بین قوسی زییل نشه سند از و نبید هامون مبانی پدرسه رو اشکال کرده بود و ماقعت تامون سنده قاسران من حیث و دلاله راجع الوسائل ابواب مقدمات العبادات درست اونجا داره خیر ابواب مقدمات عبادات داره اصل روایت را مرموم کنی تو به ایمان و کف بوده بله این اشکال اول ایشان اشکال دوم ایشان ان مفادها، مفاده ها معاقضه المحاسب علامیت المعصیه بر خود اون معنی ما... یعنی نیتش چی حساب کرده نه این جن عملی که بین حلال بوده بحث ثواب انه لو sallam و كون مفاضه ارمن ذلك لا دلاله على حرمه الفعل این, این نهایتاً جز میکنه بر حرمت نیت فاعلی دلالت بر حرمت فعل نمیکنه که خود ایشون قوه فاعلی رو قبول کنن قاضی فکری رو قبول نکرن این سفر اشعار ایشون فرمودن پس بحث اول ما وارد بحث میشیم یک آیا از اون روایاتی که وارد شده که اگر انسان نیت محصیت کرد اجام نداز چیزی رشده نمیشه و یا روایات به عکسش مثل عوازی به فعل قوم کرد داخل فیه معهوم به فعل قومن با اونهاست روایات از این برم داریم که ایشون هم از این طرف داریم هم از این طرف داره. ایشون میزن تمام این روایات ضعیق و سنده ده. یکی اشک دو تا اشکال دلاله هم دارن که بعد ازمان راجع به این حدیث متاسفانه در وسائل هم آمده دیگه حالا آرکوی که نشن به این حاشی هم داده که ناروم ایشان ضعیف نیست و یک مقداری توجه نشده که اصلا شعن صدور این روایت چیه و جیوپلا متأسفانه در کلمات اصحاب ما آمده و تعملی درش نشده اصل این روایت یه وقتی هم کردن این روایه در چند مصدر از مصادر سنت آمده و اصلش بر برمیگرده به کلام میشه حالا یا بین احنف ابن قیص و بین عبی بکره و یا بین حسن بصری و عبی بکره حسن بخری و عبی بکره درک مکرده اینگه درستی مرسله واجه احنف ابن در وسط باشه به کلی از صحابه نسبت داده اما خود احل سنت اینگه نه حدیث منحسرات مال عبی ب حبید وکر به اسطلاح برادر مادری میشه با زیاد زیاد پسر سمیه بون که معروف بود و برادر آرزش این سمیه پسر دیشت اینه عبو بکر است نفه ابن مصدر این نفه ای اسمشه این هم بچه همون سمیه است یعنی با زیاده نظمی از یک مادر است پدرهاشون باید تحب میکنه. و یکی از نواسه یعنی یکی از کسانی است که در مقابل اميرغوني ایستاد به عطر از کسانی است که متخلف در رعایت امونه همینه و از تجارب روسگار همون کسی یعنی است که الان اسمش رو بیان ببرم به معروف مغیره ابن شعبه که حذرذران بر به اصطلاح به اصطلاح ابن بن شعبه اون قصه معروف مال همین عبی بکره است اصلا چون تو خونه ابي بکره بود از 4 نفر بودن که اون مغیرشون والی بود نستجو با این نفری زنی بکاری که اسمش ها بعد طرد کنار رفت ابوبکر زیر رو در اون حالت و طلب مصطفی شهادت طالمی که عمر شهادت داده ما رو کمی شهادت داد عمر گفتین نه در حده تازیانه زدن همین ابوبکر زدن 80 تازیانه براش حد <تصحیح> حد حد ای این بعد اینکه تازیانه خود براش گفت که 80 اینی که مطلب درسته من این و ماگو حالا یه واریا میخوایم جدیات بزنیم که علیه نرده رو دخالت کرد و یه واریا زنی من میره رحیمی بکارم اگر توایتی نرحدی روی کرد این ابو بکر همون این ابو شکر ای بذشکر خبیتی فهمیدیم چی مادهش تو مایه وچه از هم تو ماده ای هم چی برشی متفاوته این برای جریان جمل درست کرده این زمانها من از ابو از سه دیگه دارم خود عرضه کنم یه صابر نیک مهاجرن از ابوبکر شعر حضورشان اینه که احمد بن قیس و حسن بصری چون بخاری از اجوال بخاری اجازه حسن بصری رو کرده که زایفی مخدع اینو این سر این دوباره بوده بخاری یک بار از احمد بن قیس نقل کرده میگه در وقت جنگی تبع وقت هم که خرج و لعن سر ابن هم رسول الله دارید مخدش این لعن سر ها در خدمت نشه و مسلم رو در آمدن که برم برای اینکه که همراه امیر المؤمنین باشم در این جنگ ابو بحر و دید گفت کجا داریم بیلیم از جنگ برای انصره ها رجل یعنی علیه تو بعضی متون خود و بخاری هم او ابن ام رسول الله به من گفت لا تخرج. نه این جنگ رو ندارم فعلمی سمیعت و رسول الله یقول مسلمان المسلمان و سیسه ما فلقات و بل محتول اصلا هدف اساسی از این حدیث که متأسفانه علمای ما هم توجه نکردن این حدیث مثل شیخ همسالی همسالی همسالی همسالی همسالی هدف اصلی این حدیث این بوده که علیه ابنان خیلیه چون علیه در, در از احادیث بسیار مشکل پیش اهلستان نتمنه چون از اون بر در جنگ برستان صرف جمع در زنگ جمن قاتل و مخصول الا ماشاءالله من از صحابه خود تلحه خود زبه عبدالله عبدالله زبه الا ماشاءالله خود علیه نبیتاره این قاتل و مخصول در زنگ جمن خب خود تلحه در هم جنگ کشته شد اونام تلحه در بهش اونوزه عشق. عشقی کنک عشقی بگونه تلقاتل و مخصول فنا این رو اصلاً ابو بکره گفته و راویش هم منحصر بینه متاسفانه این برای سر توضیح نکردن اصحاب ما قسطه به کجاها رسیده این روایتی رو که یک شخص که مادر شداتی مناسی میسید و اون مانوش این میاد و کسی که محروف به مخالفت با علیه نبی طالب این رو برای تعن در انگیل نبی طالب دوست کرده بله ما؟ داشته خاطر، با قصیدشون هر بوده در جنگ کشوری که بعد در اون عمل، در اون فلان که یادتیسیار، اما خبیت داره. دل هم رو لعنت داره. همیشه امروز لحن داشته، دوزه چون اون هم کیم نداره هر اون نشته من از اون دشمنی که کشورم تازه میتواندش. ولی من دیگه ازش خبیت میکشم. و و, و باقی و واقعش هم زندگیش هم اون اصفار بین این علمان کنی که این دشتان امیر المهنی رو به کچه بشناتر زوبه ایدو که پسر امیر المهنی اما این که دماثم این حدیث رو چون در این جا آمده من نمی خواستم خیلی باز بشم این حدیث احساسا در این احساس اگر انسان شروع بخاری و, و بقیه کتاب احرس واقعا اصلا گیر کردن احرسان چیکار کاری کنی حدیث رو؟ بخاری بله بخاری یک بار در اول اوائل جلد اول کتاب ایمان در اونجا آورده یکم در اواخر جلد سوم کتاب الکفر در اونجا هم بخاری داره حالا یکی از عجایب در این موجمل حدیث نبوی شریف واقعا اینا براتون خیلی عجیبه دلیل اومانه در تقل مسلمان به سیره ما از بخاری استفاض نکرده خیلی عجیبه برای ما خیلی هر چی ظاهرا تربیه هستن نگم چرا یا این فعال عبدالباقی در این جدیه آورده حدیثو اما در اینجا در تقل مسلمان در سیفه ما از کتاب بباید در واقع دو بار آمده نه یک بار و اینا تعمدشون بر این بود که اثبات بکنم بلانسته جیرو بلاله که علی ابن عوی طالب فنه اونم حدیث علی بکره در تقل مسلمان در سیفه ما فلقات رو نختول فنه در تقل این را جدیه این مطلب که خود اهل سنت هم گیر کردن جانه که از مقصولی پره هست یکی از قاسمین هم علیه اون علی طالب بره به قضا التضام بگیرین یکی از تشویر رو دطال میکرد بشه در خدا خایشه یعنی این ایکی از مشکلاتی که اهل سنت هست اگه شهر بخواهی بگیر بشه و من درستادم اشتباه نقصه و برشار شده در بخشی که ملقون به کتاب میشه میشدن در با این باب عتن نروزه کلا نروزه. اورده باب در, در هاشیش از بخدا هم ایشون هیچ شر نداره. تو متنش مختصر شده. در اونجا مفصل متعرض شده و اونجا دیگه توجیهات کرده و گفته اصلا این حرف ابو بکر قبول نکردن ادعای چند نفر میذاره این بود و الا حقیقت در آن زمان وقتی ازاد میرفتن نصار علی بن ابی خلیفه ایشون بود این حرف غلط اصلا میه ففاری جواب ریده اصلا متحیرم با این حریچ خواب می‌کنه بعدش هم عید دادن علایقتی نه اینکه راه حق باشه اگر جنگتون دو مسلمان بر اساس عصبیت و بر اساس دعواهای قومی و و خصوصیات فردی باشه اینطوره بعدش توجیه دادن که بله خنار نه اینکه صاحب ثبوتان داره ممکن است خداوند از اونا عصب بکنه و صاحب شه که خداوند از از این راه شد میگه متحقیه یه حدیث رو چی بکنه بلا اشکار حتی قرآن الله از خودش هم خود اهل سنت هم در اینجا نوشتن که این مخالف با کتابه چون قرآن قرآن فرقات هم نیست و ما انثاله که عرض کردم متهیج شدن که این حدیثو چیکار بکنه البته بخاری در کتاب ایمانش عنوان باب اینه عنوان باب شک در ایمانش اینه باب قول عیسی السلام ان طائفه کان من, من المؤمنین ففعلوا و اون شواصتی که دارن امثال اینها فرمان فرمنذبیشان این میگه فر تماما هم الله تعالی مؤمنه یعنی اگر یه گروهی یعنی در مقابل تعریفنا مثله هستن باز هم مؤمنن از ایمان خارج نمیشه این اعتقاد داره چون به نظر ما کسانی که در مقابل علی بن ابی طالب به کدوش اینجا باطنی بازم عنوان بابش این درخاتم الله تعالی و, و خود این خود اهل سنت انصافا در این حدیث اما نه اصحاب شکی غیر از ابوبکر نکرده نکرد الله تعالی رو جوی از عسکری چه چیزی داره داره و مخصوصا در ایده الی که حسن بختی حسن واسط نشه که ابوبکر درفت نکرده اصلا نه یعنی بود در بحث اما با, اون ملاقات با اون او ملاقات نکرد به اون به با او بحث این راجبه این حدیث عجیب و غری در متون عامه که متأسفانه عرض کردن توجه نشه در کتب ما اینجا براستاد هم آوردن بعدن ایشون گفتن که حتی این نبوی مذکور سر ضعیفه در این حاشیه نوشته که این نبوی صرف ثقیل مرادشون از نبوی همین روایت ارتقل مسلمان دو سیفه ما این که در حاشین سرد و نبویم تامون الان مبانی مراد همین روایت ارتقل مسلمان دو سیفه ما این را شده و در مسادر ما کلن در مسادر ما این روایت نمید به هیچ وجه از وجود به اهلیم و در این معلی مصلا این روایت نسبت دازه نشد این خوب در قرق کنید بعد یک کتابی که سابقاً چند بار اسمشو بردن به نام مسند الامام زید یا مسند زید هم زیدیابش المجموع بشه از مجموع این کتاب در این کتاب نقل شده اون هم از هم زیده ابن عبی هم حضرت سجاد هم عبی امام موسیم هم رسول الله این در مسند زید آمده اما در رقایات ما از اهل سرامالله علیه مجمعی کلن نقل نشده این راجع به مسند زید حالا ما نیمونیم واقعیه دسته چیه در مسند زید هم یک کلمه اضافه داره ما نیمونیم مرادش شاد مراد این بوده که توضیح حدیث باشه در مسند زید اون المسلمان به سی ما علاقه ایر سنته این کلمه علاقه ایر سنته اضافه شده این کلمه علاقه و سنت توی متن حدیث حامه نیست. خوب دقت بزنید کلمه علاه سنت بله مثلا آیه خوبی نوشه النبوی ادال علی انه اذا ثقل مسلمان به سیف ما فالقات والمسول کلام این متن متن سنی هاست اذا ثقل مسلمان سلقات والمسول کلامه فنار این متن اهل سنته لکن عرض کرده بسونید پس تعویل شده در رواده اهلسونت این تعویل شده یعنی ازالفر از مسلمان بسیده اونا لعصبیی یعنی. هسته تعویل بینطور شده اما این کلمه عصبییت در متن حدیث نیست تعویل خوب روشن شد تعویل کردن که اگر احطلافات شخصی باشه قومی باشه نجادی باشه دو نفر با همده که جنگشون در این جنگ باشه فرقاتلان نام. نه لله و طریق صحیح و نصفت امام حق و این مسائل اما در کتاب مصنف این علاقه غیر سنته توی مثل حدیثه اینجا هم مرمون صاحب و دیگران توجه نکردن این حدیث توبایی که از کتاب مصنف زید نرم شده اون زید اون لطفه عبارت که علاقه غیر سنته نه بودن پس این روایت در کتاب مصنف زید آمده علاقه غیر سنته نه بقید. علا غیر سنت اون وقت اینجا به من ناشیانه بود این اضافه خب اگه علا غیر سنت باشه اراده قفل سهر رو نباشه خب چون بباید است معروض از تخاید من کفران قطار المؤمنه کفر و سبابه فسوب بود اگر علا غیر سنت نباشه رو آخر از باشه خود اردامش حرامه احتیاج اراده قصر صاحبه ندیده. آبا و ذیل باز نمیشد. آقا ذیلش در. اراده قصر. این اولش خودش درست نکردن. ملتفت اون ذیلش نشدند. لعنه او اراده قصر صاحبه. اون با اون چیکارش میکنن؟ به هر حال این روایت ده تا که چون خیلی مشهور مجوس امروز که اگه بحث نظری بحث اصولی که این رو گفتن آها خیلی عشق خیلی فادره اما این بحثش یه دی نکته ظریفیه چون متأسفانه این روایت بعد از شیخ و عللنه و معروف شده و توجه نشده که اصل این روایت منحصرا یکی از افراد فاسد یکی از خیلی بر اون تعریف نمیشتن خانه زر انقیه بلامرجعه ولی خطی مقصدش واضحه به نظر ما این شخص مانهده و اون هم تطمیخه در قصه جمعه مثلا تصمیحه در روایت اهل سنت که ابو بحره این رو کرد بر قصه جمعه که علی امنالیو فرنا حالا اون مشکل کنی که تلهم فرنا هم میشد خیلی حالا مشکل برشون نبودم علی فرنا حالا که مشکل لده ساله تلهم فرنا دقیق از این روایت منحسرم در مسادر ما در کتاب مصند زید آمده من ارز کردم خوب دقیق بکنید مصند زید به این لحاظ شکل فعلیش کتابی است به این عنوان در مسادر شیعه اهم زیدی و غیر زیدی من یک خوضیه را ارز کردم از, از اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم ازده ای از نواهای صحابه خوب دقیق بکنید احفاظ صحابه مسلسلن به اون صحابه کتابی نصف داده به رسول الله که از همهش مهمتر شخصی نام امر ابن شعب این به جدش جد به عبدالله به نام عبدالله آز کتابی نصف داده بود و دیگر هم هستن من نبخواه ماردون بحث بشن و شدیه این کار در میان اهل بیت هم به اصطلاح را افتاد اول این کتاب اینه این کتاب نسبت داده شد به زید که زید از پدرش رو نرده ایشون از پدرش محسن از امیر مومی البته بسر راست زید بعدش قال امیر موم بعدش قال قال رسول الله این اولین کتابه ما قبل از این اولین کتابی که ما داریم اینه شخصی به نام امردن خالد الواسطی منحسه و در ایشون هست کسی یه یعنی نکرده ایشون از زید این کتاب رو نقل کرده بعد کلمه مصدر مهم و اساسی فی شیزیام هم همین مجموعه فقهی، گاهی به مجموعه فقهی میگم، گاهی بهش کتاب مصادر ذیل، یعنی یکیه، مصادر ذیل و مجموعه فقهی یکیه، فرقی با هم نمی کنه. البته بعد در یه بحث دیگه هم توضیح دادم، امر ابن خالد چون امر ابن خالد شخصیتی بود که شونیاهش حرفه اجتماع بوده، امر ابن خالد به اتفاق اهل سنت خضاب، یعنی هیچ ازش در نکرده. یعنی در اهل سنت یک نفر هم ننوشته نوشته صحتون به اتفاق کذاب نه این بابا فقط رفیعو ایذکه به امر ابن خالد شرابیه که اساس کتاب از ایشان است چون در گنجش امر خالد این کتاب در مصادر اصحاب ما اومده محمود علی جوکی در به امر خالد شده سرلش به این کتاب نوشته لکن متاسفانه در کتاب کشی به نرز از رجال ابن فرزال از ابن فرزال روشه کان سه قطر توصیقش کرده صراحات. ابن فضل در کتاب علامه افل کشی ارز کرده مروم کشی ترسط عیاشی ایشون ایاشی شاگرد ابن فرزال پسر علی ابن ازن ایشون در کوفه دیده ازش مطالب رجالی نقل کتاب بشه مرکنه ازشون مطالب رجالی میگه سرس تو علی افنال حسن عزیم هم قدونه خالف و خالف سه بسه اکان سه ایشون کرده به توصیخ او هم بزرگان اصحابه و مصران اقوی دیگران توصیخ کردن بعد رسول حسین اولوان قبلش داره او توصیخ نشده آن کوی او را کرده. یک عبای تمیمی داره قبل از او که منبه ابن عبدالله اسمش زیاد کوی او را توصیف کردن قرار شد که نسخه سند و تافقه اتمامه تن علمبانی درست منتشر بشه اینکه نوشته رو مبانی، یعنی مبانی, مبانی جدید استاد چون در سابق اینو بوسی نمی‌کردن حسین علوان رو حسین علوان مشکلش اینه که هر دار وقت داره چیزا رو سفراستون می‌کشه نیست که حسین میخواد با برادرش حسن اصلا حسن هم برده این اختلاف معروضیه که اون اباظه نجاشی به حسین میگه با که برادرش باشه علم چون کمیته‌ها موجود داشته من در درانشون توصیه کرده دقیقاً همین پس بنابراین این که ایشون نوشته روی کارهای سابق آل اون دوره‌های اولی که ایشون ایشون عارف حدود سال‌های 85 هجری قمری 85 وارد دسته رجالی بودند یعنی یک 20 سالی از تصدی مرجع گذشته بود ایشون و ایشون شده بودن. یه بیست سال گدشتون ایشون وازد رجالی این دوره های هنوز به اصطلاق قبل تصدیه به مباحث است و این اشکالی هم که ایشون کرده راست روی مبانی اخیر ایشان روی مبانی اولیه روایت دریف بوده بکنه رو مبانی اخیر ایشان بعد این اشکال وارده و اما از کردید از این کتاب مصنده زید که بود 1000 هزار روایت از آنها کمتر نصده کرده روایته از ما همونده 25 تا, تا 30 تا خوب دقیق کرده بقیهش هم نه عورده از کل این مصنده زید الان در کتاب عربه ما یک مختصراتیش در کتاب کافی هست بیشترش در کتاب تحضیل و سرنده هاش هم واضح اینه از پیش ما واضحه چطور از ریگی ها گرفتن واسه این وقایت رو مرومه شیخ توسی از کتاب نوادرالحکمه نارد کرده کتاب دربه شبید که همیشه ارد کرده زیاد گفتیم آنی که آشنا با ما باقصد ما کتاب ضعیب یه دربه شبید یعنی است که از نظر وساقت راوی مرد بزرگویست لیکن توش قنقاتی همه جروع برده در کتاب عربریه ما این حدیث فقط در کتاب تحضیب آمده با اونم از کتاب دربه شبید یا نوادرالحکم مرمون صدوق هم تو علل و شرایی این تو فقیح نیه برده لیکن ایشون از طریق سعده نعبدالله مرد کرده ساقا من توضیح زیاد که سعد یه مدار روایات که نمیخونه که با امه موافقه حالا سرش هم نیمونه و با آمه موافقه هم رحیمالله علایه مرمون شیخ صدوق هم در کتاب رسمیش فقیح این رو نیه اما در کتاب علل و شرایی هم واضح از کلیم از شرایطی رو استفاده که خود سلوام پیش از داده است و امروزها مسنّت میگفتن مسنّت یعنی که رواجی کتابی که رواجی که مربوط به یک موضوع، جمع جرم میخواد می‌خواد باشه نباشه. خوب یه بار بگو. مسنّت اینه. مثلا هر رواجی که در نداره، حالا میخواد درست باشه نباشه. خسالیشون مسنّته. هر رواجی که می‌شلر یک باشه، دو باشه، سه باشه، چهار باشه، پنج باشه. و لذا خود صدوب هم در اول تقییر این طور بیگه ولم کنه قصدی فی قصد المسنفین. من در کتاب تقییر بیگه مسنف نداریشم فقط روایت که قبول آورده هم اشاره داره بیدید که بقیه تقاقای من تصنیفه. اما این کتاب من تصنیف نیست خجته پس این روایت الان به حسب اصلش از کتاب زید و خود ما هم که به کتاب زید قبول نداریم انصافا کتاب آثار جمع یک که احتمال تو با قضای و, و احکام گرفته حالا این رگاهیت با اون تاریخی دیر پیش احل سنت داره به نظر من دیگه جایی شبه نمیذاره که کاملا واضحه هیچ کس از احل سنت به علیه نری صالبی رو رو نسال نداره هم به هیچ صحابی دیگه هم نسال نداره منحسنن هم یکی همون سمیه یعنی حبیبت کسر سمیه البته این هم در جنگ طایف مسلمان شد بعد فتح مکه مسلمان شد در طایف بود این اهل طایف الان که بما خواهیم پس بما این, این روایت به نظر ما کلن مجبوله خودی که داو مستنزد و از اروشن نظر و از داره توسیق ابن فضا رو در اینجا ما قبول نداریم شواهد معید ایشان نیست و این ر تا از خواب نشده اگر می‌دونستن که در چه واقعی نقل شده, شده و چه هر چیزی و چه کسی اساس نقلشه و منحصر در روز فکر نمی‌کردن میگه مرحوم بن سال مرحوم یا مثل استاد حاضر حاضرنین واسه بیان از همین کتاب مرحوم نوادر حکمت که دغدغه شدید در بین وقت اصول پیدا میشه مثلا هر و گوسفندی یک شفیق یک بقال بود در قم دو یک پسر اینجوریه هر چی می‌خاستین داره مثلا گاو گاودار می‌خاستین شمبولسی می‌خاستین فرش مثلا انواع جمادات می‌خاستین همه چی داشت از این دکان این در بلی هر چی می‌دونید از این پسر و اسم این کتاب هم بشوخی و مقاله در به شفیق گوسفند کتابی نازل حکمت تنها کتابی که ما نیاز داریم در به شفیق گوسفند شفیق هم بقال بود از این انصافت میخوره که همون درده شدیب باشه به هر حال روایت قابل اعتماد نیست و خود جناب عمر بن خالد فکر نمکم بحث کرده داشتن خود این حدیث کتاب کلن قابل اعتماد نیست البته یک بحث دیگه هست حالا برث اختیاری مثلا هم ف مثل آ که جامعه اهای سرنشن مبال بول جدی. این صحبت هست ساله که شما 20ی تا از ای ممس ضی در توتون آمما هم اگر از چیزی کل جامعه بنویسید حالا اختشون حالترسید تا مط دتر نبود حالا که معلوم این م زیده محدی بود به ما شما با حالا رو در جامعه آش همشه بیانید این یک مطلب یه مطلبی میره مربوط به مرجوم شهید سالی چون تدریس لوعه قرن دو در بحث متعه داره میگه با اینکه روایات اصحاب ما کاملا متعارض ابواب مختلف کار شدید داره در باب متعه تعارض نداره تمام روایات داخل یک جوادشه روایت واحده ی معارض در حرمت متعه نداری این مطلب شهید سالی قدس الله عنده فی شرح لوعه تدریس اون تو بحث نکاح داره یک سایل فرماز اون وقت همین دولت ساله نوشته نکته بود زمان میشن لازمیشون مراجعه ایش کافی نبوده تصادفن یک دون روایت بریمونم در بهمت این هم روایت احل سنن این رسول الله حرم المطعته ولهم الهمرال احلیه آم خیلت اونم تو همین که خواهر تو مستد تو وسائل داره تو وسائل نقلرن تحضیب این همین سنن بر میگه داد برای نخالد اندی. دلیل ما خواستم بگم که یک جایی که ایشان شد در لوح نمیشه نگوری. شنان ترجو بودن که الان تو لوح از دهانه شد نمیمونی باش تو. یا ولاد با نیاب نکرده. گفتم مال و الا اون تنها وایه که در مقابل دهاری وایه که ما در مسجد این کنه تو هم تو میشاد. لعنت! اینجا نه میشاد. ابو نام ابو جوزوه. جماب آقای حسنین نوروان کلبی و از عمره میخواده واسطی امزه این صافر قبول این نوروان کاملا مشکله اصولا هست کردیم از امام باقی معلومه شده به این ترتیب از امام صادق زیاد لیکن مشروعه اشتار و سکونیه توضیحاتی در جا دیگه پس کنیم حدیث محلومه اصطا بودن هاشبی چیزی نمیشه به نظر ما حدیث کلن مجبوره له الا تقدیر سبح اول تقل مسلمان اگر رسول الله فرموده باشند جنگی بین دو نفر نه اینکه جنگی اباویدی باشه دو تا بیخود بیجاده بیت فاوو برمیشه که نمیگه خودت اگذا میگه خودت اگ روی تساوت دادن مراد اینه که اون رو واسه ما قبول بکنید نه علاقه به سنتی که ایشون اضافه کرد اصلا ابوبکر نفهمیده اون بغضی که مثلا در دلش میونه شه این معبرهلی هست در کسانی که مخالف حدیث میشن، ابو بکر در چند و بلاغه یه داره در کسانی که بوقعه علی ابن پیامبر و این برفرض بر فرض هم درست باشه که ما در روایات ما اصلاً تایید نشده کلا. یک دان روایت تاییدش پنج جا ما نداره. این خیلی مطلب مهمی که از دو وام مهم بخاریتون بغرش هم اوائل هم اواخر او لعن و اواز جلد آخر نو همی کرده نه جلدیه نه جلدیه در سه جلده آخر جز نو همش در کتاب سکن آورده انصافاً صافت این حدیث به هیچ وجه نماز دکس می و مناسب شنه علمه های ما نیست از باطل و علا تقدیر تا فرض بکنیم قطعا موردش دعوه های است. قطعا و اثبات این هم موشهه و الله علا محمد